دوم بیماری های حافظه حافظه تحت تأثیر علل مختلفی خصوصاً بر اثر عوامل ارگانیکی دچار بیماری هایی می شود که می توان آنها را به سه گروه تقسیم کرد. یک یاد ها یا فراموشیها، ها، دو تحریف حافظه سه شدت حافظه بخش اول، یادزدودگی ها یا فراموشی ها مواردی که در آنها کاهش یا از بین رفتن کامل حافظه اتفاق می افتد با این عنوان معرفی می شود این گروه بر حسب حالت ابتلا به سه دسته تقسیم می شوند یادزدودگی های تثبیتی یادزدودگی های فراخانی و یادزدودگی های باس علاوه بر آن پریشی و زَبَان‌پریشی را نیز اگرچه باید جداگانه مطرح شوند ولی به موارد یادزدودگی متصل می‌کنیم. در یادزدودگی تثبیتی خود عمل حافظه دوچار اشکال شده و به خاطر سپردن مسائل حداقل به صورت ظاهر برای شخص غیر ممکن می‌شود. این حالت می‌تواند مادرزادی باشد که در موارد کانائی و انهتات کالیوی و کرتنیزم به چشم می‌خورد. و نیز میتواند مانند موارد جنون و پیری تدریجی و یا برعکس ناگهانی باشد که بر اثر عوامل فیزیکی، بیماری ها و یا علل روانی به وجود آمده است. همه این موارد مثلا بر اثر آسیب مغز همراه یا بدون آسیب آنسفالیک، ضربه به قسمتی از بدن، اختناق بخشی از بدن، غرق شدن، سنکوپ، مسمومیت های حاد، الکلیسم، مسمومیت توسط اتر اکسید کربن و غیره، افونتهای هاد، تب تیفویدی، تیفوس و وبا و غیره، بحرانهای سر و شکای روانی به وجود می آیند. در اکثر موارد، یاد زدودگی ناگهانی شکل پیشگستر یا دائمی دارد. این حالت مربوط به شرایط حاضر است که به سرعت فراموش می شود. ولی به خاطرات کسب شده قبل از واقعی که یاد زدودگی را ایجاد کرده، متصل نشده یا به شکل ضعیفی متصل می شود. همه چیز به گونه پیش می رود که گویی یک ناراحتی در درک یا توجه به وجود آمده تا به یک یاد زدودگی واقعی منجر شود. موردی که در اینجا مطرح می سازیم و توسط جیدلی گزارش شده، این نوع ناراحتی حافظه را به صورت دقیقی تشریح می کند. وی در این باره می‌نویسد ویکتور مردی 50 ساله و مبتلا به پسیکوپولی الکالیک است او خاطرات گسترده‌ای از گذشتهی خود دارد و مثلا می‌تواند خدمت سربازی خود را کاملا تعریف کند ولی از یک سال پیش تا کنون او هر کاری را که می‌خواهد انجام دهد فراموش می‌کند او می تواند با شخصی گفتگویی داشته باشد ولی به محض اینکه آن شخص او را ترک می کند به خاطر نمی آورد که او را دیده باشد اگر مخاطب وی بازگردد ویکتور او را نخواهد شناخت و به همین منوال هر چند بار هم که این کار تکرار شود باز هم وی را نمی شناسد. ویکتور پس از ماه‌ها اقامت در بیمارستان سنت آن هنوز هم پزشکان و پرستاران را نمی شناسد. وی در بخشی که بستری است قادر به حفظ نام سالن و یا شماره تخت خود نیست. روزنامه را میخواند ولی به سرعت آن را فراموش کرده و با خواندن همان اخبار قبلی دوباره تعجب می کند. جای خود را پشت میز نمیشناسد و به خاطر نمیآورد غذایی را که چند دقیقه قبل برای وی اند خورده باشد. بازی با ورق را انجام می دهد ولی به محض اینکه بازی تمام می شود فراموش می کند که این کار را انجام داده است. این یاد زودودگی با شدت تمام در تمام یافته های حسی وی، بینایی، شنوایی یا لامسه گسترش می آبد. حتی دردهای پولینفریتیک نیز که بر اثر فشار توده های ازولانی ماهیچه پا به وجود می به سرعت فراموش می شود. چند هفته است که وی در لحظاتی دچار توهمات شنوایی گفتاری که محتویات آنها را بدون کتمان بروز می دهد می شود. حتی قبل از اینکه این گفته ها کامل شوند، آنها را نیز فراموش می کند. متذکر می شویم که به نظر چند تن از روانشناسان و خصوصا پیر راند که نظر خود را از طریق تجارب هیپنوتیک تقویت کرده است، تسبیت خاطرات و عمل حفظ آنها در یادزدودگی تسبیتی کامل است ولی در مقابل یادآوری آنها غیرممکن می باشد. این همان چیزی است که به صورت کاملا مشخص در رابطه با یادزدودگی فراخانی نیز انجام می شود. یادزودودگی فراخانی از طریق حالتی که خاطره دیگر قادر به مطرح شدن و مراجعت نیست حداقل در شرایط عادی مشخص می شود. در این رابطه چند کتاب روانشناسی کلاسیک مورد یک پستچی ایرلندی را مطرح می‌سازند که برای یک شرکت تجاری کار می‌کرده و در حال مستی پاکتی را به آدرس اشتباهی می‌رساند. هنگامی که این شخص به حال عادی باز می‌گردد، کاری را که انجام داده بوده به خاطر نمی‌آورد، ولی در حال مستی مجدد، محلی را که پاکت را اشتباهاً در آن گذاشته بود، دوباره به خاطر آورده و آن را برمیدارد. یاد زدودگی فراخانی می تواند به صورت کلی باشد که در این حالت فرد تمام خاطرات پیشین خود را از دست می دهد. او دیگر چیزی نمی داند و به عنوان مثال به خاطر نمی آورد که آیا ازدواج کرده، فرزندانی دارد یا خیر. به ترتیب عمل به خاطر سپردن یا استخراج از حافظه متوقف می شود. ولی معمولا یاد زدودگی فراخانی به صورت جزئی اتفاق می افتد. و گاهی اوقات به یک گروه خاص از خاطرات یا مرحله معینی از زندگی مربوط می‌شود. در مورد آخر، ممکن است یادزدودگی روی یک واقعه یا مربوط به دوره‌ای با مدت متغیر که قبل یا بعد از این واقعه اتفاق افتاده رخ دهد. یک نوع رایج یادزدودگی فراخانی، فراموش کردن زبانهای خارجی است. در این رابطه، جورج دوما مورد زیر را مطرح می کند. مرد جوانی پس از یک حالت استراب و هیجان زبان لاتینی را که از سن دوازده سالگی فرا گرفته بود فراموش کرد. در حالی که زبان ایتالیایی را که در چهارده سالگی فرا گرفته و زبان آلمانی را که در شانزده سالگی آموخته بود کاملا به خاطر میآورد. یاد زدودگی باسچناسی شامل از بین رفتن باسچناسی اجسام می شود. این حالت میتواند حرکتی یا ادراکی باشد. در مرحله اول که آن را به نام کنش پریشی میشناسیم، اشکال نه تنها در ارتباط با ارائه حرکتها، ها، بلکه در خود عادات حرکتی نیز مطرح میباشد. اگرچه فرد از نظر هوشی و اعمال حرکتی و حساسیت حواس سالم است، ولی قادر به انجام حرکات تنظیم شده بر اساس یک هدف نیست. مثلا برخی افراد قادر به نگهداری یک قاشق یا چنگال یا لباس پوشیدن به تنهایی و یا استفاده از یک مداد یا خودنویس نیستند. در مورد دوم، اشکال در بازشناسی ادراکات بینایی، شنوایی یا لامسه به وجود می‌آید. به این صورت که شخص اجسام را از طریق دیدن بازشناسی نکرده و حتی پس از یک ماه تمرین نیز قادر به هدایت خیش به سمت اتاقش نیست. کوری روانی و دیگر نمیتواند تواند صداها را تشخیص دهد. کری روانی و غیره. هنگامی که یاد زدودگی تدریجی باشد، قانون اقبلشینی حافظه که توسط تی ریبوت برای اولین بار مطرح شد، به صورت تدریجی انجام می‌گیرد. در این حالت، خاطره وقایع نزدیک قبل از وقایع دورتر ناپدید می شود. اکتسابات ذهنی گذشته کم کم از دست می روند به صورتی که موارد پیچیده تر قبل از موارد ساده و مسائل مبهم و گنگ پیش از نمونه های ملموس و مشخص و سپس افکار و سرانجام احساسات از بین می روند. اکتصاباتی که تا آخرین مرحله مقاومت می کنند آنهایی هستند که تقریبا کاملا ارگانیکی بوده و تنها از طریق اعمال کاملا خودکار عمل می کنند. فراموشی علائم به صورت اقب تدریجی از اسامی خاص، اسامی عمومی، صفتها و افعال، اصفات، نظیر افسوس، آه، خوب و غیره و سرانجام، حرکات انجام می‌گیرد. بخش دوم، نماد پریشی و زبان پریشی همانگونه که قبلن نیز متذکر شدیم، نماد و زبان را نیز می توان به یاد زدودگی مربوط دانست. نماد پریشی شامل یک نوع خاص از ادراک و یا به عبارت دیگر ناراحتی است که در درک طبیعت چیزها معنای اجسام بدون استفاده از مجاری حواست و بدون ناراحتی های ادراکی ساده ایجاد می شود. به عنوان مثال، گاهی اتفاق می افتد که بیمار، برخی از سمبولها نظیر ورقبازی، بازی، نوت‌های موسیقی، دومینو و غیره را دیگر نمیشناسد. زبانپریشی یا بیماری‌های زبان با فقدان هر نوع آسیب و پارگی و یا هر نوع فلج اعضای گفتاری را می‌توان به عنوان یکی از اشکال یادزدودگی محسوب کرد. پروفسور شارکو به مدت طولانی این موارد را مورد مطالعه قرار داده است. وی پس از مشاهده های شخصی و تحقیقات سایر فیزیولوژیست ها نظیر بروکا و ورنیک آنها را به گروه های مختلفی تقسیم بندی کرده که علورغم آنکه امروزه دیگر آنها را به صورت کامل مجزا از یکدیگر محسوب نمی کنند، ولی با این وجود ارزش زیادی از نظر روانشناسی آموزشی دارند. طبق نظریه این متخصص برجسته اعصاب، تصاویر شنوایی بینایی و حرکتی زبان گفتاری یا نوشتاری وجود دارد که از تصاویر شنوایی بینایی و یا حرکتی معمولی مجزا هستند. زبانپریشی به از بین رفتن آنها مربوط می شده که خود بر اثر پارگی و آسیب مراکز عصبی خاص ایجاد می شود. به این ترتیب شارکو، زبانپریشی حرکتی، کری گفتاری، نانویسی و کوری گفتاری و ناخانی را مد نظر داشته است. در زبانپریشی حرکتی یا زبانپریشی بروکا، علت نامگذاری این است که بروکا محل این زبانپریشی را در قسمت سوم خم قطعه پیشانی سمت چپ مغز یا همون پیچ بروکا می دانست. تصاویر تلفظی و یا به عبارت دیگر کاری که باید برای تلفظ کلمات انجام شود فراموش می شود. در عوض، بیمار، زبان گفتاری یا نوشداری را میفهمد و توانایی ابراز افکار خود را از طریق نوشتن همچنان حفظ می کند. در عین حال به صورت استثنایی مشاهده می شود که شخص قادر به تلفظ هیچ کلمه یا اظهار هیچ صدایی نباشد در غالب اوقات زبان پریشی روی یک یا چندین کلمه و در مورد چند سیلاب که در هر مورد آنها را تکرار می کند، تکیه می کند. گاهی اوقات او قطعاتی از جملات را حفظ می کند. چیزی که در این مورد عجیب است این است که بیمار میتواند کلماتی را که در حال عادی قادر به تلفظ آنها نبوده با آواز بگوید. در این حالت موسیقی گفتار را آموزش می دهد. درست مانند اینکه کلمات و اصوات روی هم انباشته شده باشند. کیه کلامی که توسط ورنیک کشف شده است با از دست دادن مفهوم کلمات طولانی مشخص می گردد. این بیماری وچه مشترکی با کیه معمولی ندارد زیرا در این حالت گوش دچار آسیبی نشده است. شخص مبتلا قادر به حرف زدن نوشتن و خواندن است اما چیزی را که برایش میخوانند، نمیفهمد. او صدا و گفته ها را مانند یک صدای مبهم و غیرقابل تشخیص میشنود. او صداها را میشناسد و معنای واقعی آنها را میفهمد. اما تنها گفته های انسانی برایش غیرقابل درک است. هانری برگسون در کتاب ماده و حافظه می‌نویسد: بیمار خود را نسبت به زبان خیش در همان شرایطی می‌یابد که ما هنگامی که یک ناشناخته را می‌شنویم، دچار آن می‌شویم. دکتر پیرماری و بسیاری از متخصصان دیگر اعصاب پس از بررسی چندین مورد به این نتیجه رسیدند که زبانپریشی پریشی ورنیک یک زبانپریشی واقعی و از دست دادن واقعی زبان می‌باشد. و میتوان گفت که یک فرد در شرایطی دچار زبان پریشی است که دیگر قادر نباشد زبان اطرافیان خود را درک کند به هر حال کاری کلامی به ندرت به صورت کامل وجود دارد اکثر بیماران تلفظ اسم خود را می‌فهمند برخی دیگر چند کلمه آشنا را تشخیص می‌دهند و گاهی اوقات یک کلمه اساسی ایشان را قادر می‌سازد که معنای تمام جمله را دریابند. ولی اگر جهت جمله را با حفظ همان کلمه اساسی تغییر دهیم آنها به دو یا سه سوال مساوی هر چه باشند یک پاسخ خواهند داد در مورد بقیه به طور کلی بیماران پاسخ‌های متنوعی می‌دهند که گاهی اوقات به وسیله لحن سوال مطرح شده متأثر می می‌شود ولی غالبا هیچ گونه رابطه‌ای با خود سوال ندارد گاهی اوقات نیز اگر برای بیمار که درک گفته‌های طولانی را از دست داده هر کلمه را چندین بار تکرار کنیم و خصوصاً اگر آن را به سیلاب تلفظ کنیم آن را می‌فهمد. باید اضافه کنم که کاری کلامی گاهی اوقات سیستماتیک بوده و به عنوان مثال به حافظه شنوایی یک لهجه یا زبان خاص مربوط می‌شود. به این ترتیب یکی از بیماران دکتر اوره فقط هنگامی پاسخ می‌داد که با او به زبان محلیش صحبت می کردند. و هنگامی که به زبان فرانسوی با او صحبت می شده آن را نمی است. یک روسی نیز که در سالپتری تحصیل می کرد، پیش از آنکه به کری کلامی مبتلا شود به زبانهای روسی، آلمانی و فرانسوی مسلط بود. اما پس از ابتلا، در مدت بیماری خود زبان آلمانی را به سختی می شنید، در حالی که هنوز زبانهای روسی و فرانسوی را درک می کرد. در نانویسی حرکات هماهنگی که از طریق آنها اندیشه به صورت علائم نوشداری تظاهر میکند به فراموشی سپرده میشوند شخص دیگر قادر به نوشتن نیست ولی این کاملا واضح است که در این ناتوانی هیچ گونه فلج دست شرکت نداشته و شخص بیمار میتواند با مهارت کافی از انگشتان خود استفاده کند و حتی قادر است نقاشی کرده و تصاویر هندسی را کپی کند اشکال بالینی نانویسی متنوع هستند و به صور کامل یا ناقص، نوشتاری یا گفتاری بروز می کنند. گاهی اوقات، بیمار غلم به دست بی حرکت باقی می ماند و قادر به نوشتن حتی یک کلمه نیز نیست. و گاهی اوقات نیز به صورت خود به خود در پاسخ به یک سؤال شفاهی یا نوشته نمی تواند حتی کوچکترین کلمات را نیز بنویسد. گاهگاه نیز بیمار با نوشتن چند حرف یا کلمه که همیشه از یک گروه هستند نام، نام خانوادگی، اسامی آشنا، حال هر فکر دیگری را که میخواهد اظهار کند یا هر پاسخ دیگری نیز که میخواهد بدهد در همون کلمات متوقف میماند. حروف گاهی اوقات به اندازه کافی صحیح هستند، اما اکثر اوقات در هم و نامنظم می باشند. اگر منظور یک کلمه کامل یا یک جمله باشد این کلمه یا جمله نوشته شده پاسخ آن نظریه نیست که شخص مایل است اظهار کند علاوه بر این چون این بیماری که قادر به نوشتن حروف تحریری نیست میتواند حروف را به صورت چاپی ترسیم کند برخی دیگر از بیماران میتوانند نوشته ها را مانند اشکال هندسی کپی کنند و برخی دیگر قدرت نوشتن حروف را نداشته و فقط می توانند اعداد را بنویسند. و سرانجام در ناخانی خطوط دیده شده ناپدید می شوند. در این حالت بیمار دیگر قادر به خواندن نیست. او چیزی را که به وی گفته می شود می فهمد و همچنین قادر است افکار خیش را از طریق گفتن اظهار کند ولی نمی تواند بخواند. گاهی اوقات نیز برخی از بیماران مبتلا به ناخانی هنوز هم قادرند اعداد را بازشناسی کرده و عملیات ریاضی را انجام دهند. برخی دیگر نیز می توانند ساعت را بگویند و با ورق بدون اشتباه بازی کنند. این بندی نسبتا ساده یادزدودگی به یادزدودگی حرکتی، کریه کلامی، نانویسی و ناخانی، بعدها پس از شناخت حدود بیست مورد متفاوت از یاد های دیگر نظیر لالی کارکردی، یادزدودگی ترانسکورتیکال، یادزدودگی تلفظی و تنینی و غیره پیچیده تر شد. سپس ژول درژین ضمن رعایت این تعبیر کلاسیک نشان داد که این تنوع یادزدودگی بیشتر شکل مصنوعی دارد تا واقعی. وی آنها را به دو گروه مهم یعنی یادزدودگی حرکتی یا همان یادزدودگی بروکا و یادزدودگی حواسی یا یادزدودگی ورنیک تقسیم کرد. از سوی دیگر دکتر پیر ماری نظریه کلاسیک یادزدودگی از سه جنبه آناتومی، بالینی و روانی را مورد انتقاد قرار داده و خصوصا نشان داد که منطقه بروکا سومین پیچ قطعه چپ پیشانی مغز نقشی را که بروکا به آن نسبت داده بود در زبان ایفا نمی کند. وی با مطالعه سه مغزی که بروکا تحقیقات خود را روی آنها انجام داده بود در موزه دوپوترن دریافت که آسیب‌های موجود در این مغزها به سومین پیچ قطعه چپ پیشانی مغز محدود نشده و در سمت عقب در منطقه انتهایی نیز گسترش پیدا کرده‌اند او در ادامه اظهار داشت که سه مورد بروکا نه به اندازه کافی این مسئله را ثابت می کنند و نه آنقدر تعدادشان زیاد است که بتوان با تکیه بر آنها یک قانون کلاسیک را حفظ نمود او در کنار سایر محققین مواردی را که یاد زدودگی حرکتی بدون آسیب در قطعه سوم چپ پیشانی به وجود آمده و همچنین مواردی از آسیب این قسمت را در افراد راست دست و بدون ایجاد یادزدودگی مطرح کرد. تجاربی که به وسیله انگل هد به دست آمده است، نیز این اصول را مورد تعیید قرار می دهد. و سرانجام در میان افرادی که در جنگ مجروح شده اند، مشاهده شده که اگر آسیبهای شدید قطعه چپ پیشانی باعث ایجاد اشکالات گفتاری می شود، گاهی اوقات همین مشکل، در میان افرادی که ضایعات در قسمت قطعه راست آنها آسیب دیده نیز مشاهده می شود. بنابراین مشخص کردن جایگاه مرکز زبان در مغز تا کنون به خوبی انجام نشده است. در عین حال بدون آنکه وارد بحث متخصصان شویم، فقط متذکر می شویم که به گفته هانری پیرون اگر نظریات متفاوتی با نظریات گذشته مقابله می کنند، ولی مسائل آناتومیک پاتولوژی غیرقابل انکار باقی میمانند. چیزی که از یک سو به ما امکان میدهد که بگوییم، تصاویر کلاسیکی را میتوان به طور اجمالی حفظ کرد و از سوی دیگر بگوییم که زبان یک مجموعه بینهایت پیچیده است که در آن اعمال سطح بالای ذهنی، نظیر هوش، ابتکار و همچنین ها و عادات نقش دارند. این نتیجهگیری همچنین از تحقیقات گلدشتاین، کنارد اومبردان نیز که مسئله یادزودودگی را از سه زاویه مطرح کرده اند به دست می میآید. از نظر آناتومیک مسلما مناطقی در مغز وجود دارند که دارای قدد تخصصی هستند. از نظر بالینی همان طبقه بندی که قبلا مطرح شد وجود دارد و در زمینه روانی پاتولوژیک، رابطه بین زبان و هوش به خوبی روشن نیست.